واما چنانکه مشهود است، البته ما تصراحتش را گفتیم و که راجع به در نواحی قد قیام اصول و امارات در مقام قد تاریخی بر شما وجود. چون هرچو این که در اصول سه معنی هست یکی این که قای مقام حتی طریقی میشن مطلقا نمیشن مطلقا یکی از تفصیل بین قصول محرزه و بین محرزه تا اینجوری بست روشن شد که امبرم قصول محرزه بلتر دیم که قای مقام رو قصد بشن توی شبه ها توی حکمیه ما نزدیم اینه این بحث یه این این تشکیفیه نزدید به بحث خود اصیب بله قصول محرزه ما در موضوعات داریم بلکه از شد که کلیه اصولی که در اینجا به عنوان اصول محرزه نوشته شده و علماءی ما نرقل کردن تمام اینها در شباهات موضوعی هستند. اگر اصل محرزی در شباهات بکنیه باشه همان استثابه که مثلا این که مثلا در آن اول خیار داشت استثاب بقای خیار بکنه مثلا خیار علال فوق نباشه علال یا مثلا این مایه قبلا نجس بود چون متقیبت و دور اصافش و از ظالت تقیبه و است. استطاع بقای نجاست رو کنه. بگیم این مایه نجسی که به اصطلاح ظالت تقیبه و نفسه به نحوه شوهی اکنی کنی باقیست سر نجاست روش این آقای ازال این اواز زیاده یکی تو تا نیست بر این اصل مهرز یا اصل تنظیری به تبدیل دیگری در شبهات بکنیه مانه هستره به استثحاب و ما چرا نعرض کردیم که این استثحاب در شبهات بکنیه به نظر ما جالی نمیشه ازا مشکل درد اما در شبهات موضوعی زیاد دلیگه حتی به نظر ما قاعده قرآن هم جزو اصول است اگر قبول شکن به قرآن دیاد در موال خاص خودش ارسا هم قاعده سوق مثل قاعده یک قاعده یک در اینجا ما قیل از قاعده علالیت چون یه قاعده داریم یه قاعده علالیت قاعده علالیت ما رو زمان زامن شده علالیت ما اخداد حتی تو از دید. این یه حکمیه این رسی به مانحنفی هده مراد از مانحنفی قاعده یک که سیگه در یک چیزی تصرف رو کنه. این علامت ملکه تصرف شخصی در چیز او دادی از زمان این محنش نیکی که تو مالکه این رو اصل ا قاعده اصول مسئله این اصول اصولا اصول تنزیه است و اصول تنزیلی در شواص موضوعیه مسلطاً حراوان قاعده تجاوز قاعده فرا از شقایل تجاوز در دین امر جاری میشه اگر شک در وجودش باشه یعنی شک در وجود رکوع در حالت سجده و قاعده فراق بعد از عمل جاری میشه اگر شک در صحت باشه نماز خونده یا نه این قاعده پراغ حالا از دیگه قاعده که هر رویه قاعده برمیگردن حالا آخیه حالا من این پا باردون برسوشم و از که در عبارت استاد بود که بود اصالت و صحه و قاعده پراغ برسوشت بودن این اصالت و صحه در مقابل قاعده پراغ اصطلاحا اصالت و صحه که ایفعر غیبه که اگر از غیب کاری صادر شد شک کردیم هم به برسری تاکن اشاره کردیم ما اساس صحیحی درورد در وضوحی ندادن رو در مشهور ضرب الیخ کلا یک دیار واضحی نداره واضح روشنی به ثواب تجاووز و غالب و انا تقدیر که این قاعده از ثابت بشه اصل غیر محرزه اصل محرز نیست اشتباهی خواهد شد ان شاء الله بیشواد نظر مبارک این, این آقایونه که اصل محرز گرفتن اصل محرز نیست اساس صحه اصل محرز نیست اساس صحت پابش که این آقا گناه نکرده این آقا کار حرام انجام نداره این آقا مثلا خلاف وظیفه انجام نده اما معنی این که این آقا رو خوب انجام داده این آقا هم با طارق این اینا رو اثبات میکنه اساس صحت مصیبت نیست تنزیری نیست معارض نیست اساس صحت پابش اینه که گناه نکرده ان شاءالله این کاری که انجام داده در حد معذوریته این یک مورز بودن به اثبات چیزی دیگری محرز میتونیم بگیم مرتکب گناه نشده اما بهش رببی نیست نه مگر قاعد یک مثلا به املاب مثلا دستش در اختیارش مثلا اینکه که از رببی یا غیر ما در اختیارش به قاضی است. بله اما به اصال تا سهل میتونیم بگیم به ربببی بودی یا نه معذوره بر فرزم رد بر دیگه فرزم معذوره این از اساس و سهه از این درمه لذا این نکات رو خود دقیق بفرمید که نکته اصول محرز و غیر محرز روشن بشه همه اصول رو به یک نواق به یک نواق به یک چوب نمیشون همه این مقدار بحثای اصول به این معنا و تمیز بین محرز و غیر محرز و فرق بین این اصول ای با هم دیگه و فرق اینا با امارات، یه بحث لطیفی است که در میان علمای متأخر شیعه مفصلا بحث شده در علمای قبل از برخی عبارات در میان که تمام اصول را مثلا ملحق به امارات کرده. حتی اصول مثل اساسی را او اساسی اختیار کردند به اصول محرزه از عبارات مسئله سنی ها اینطور در میاد توضیح بحث که تو اول احاس اصول عملی اونجا عرض میکنم الان اینجا جای بحث نیست بعد اینجا اشاره اجمالی بخونم خدمتتون خدمت. این بحث ها با این عمرش بیشتر در اصول متاخر شیعه مطرح شده نه اصول اهل سنت و نه کدمای شیعه مخصوصا از بعد از زمان شیخ قدس الله نعشه میخوام بگم ایشون مبدع کاره ایشون تقریبا تنظیم کردن قبل از ایشون هم مطرح هست متفرقا لكن دیگه از زمان شیخ به بعد اینا دیگه تنظیم شده هر ما قبول کردن که مثلا اصول موجز داریم غیر موجز داریم و با امارات فرد می کنند البته راچه به اصول محرز چون جنبه احراز سوش هست خواهی نخواهی یه مشکلی با امارات همیشه دارند یک احراز و مای توش هست حالا فرس این شخص تصرف میکنه، از تصرف او کشف ملکی هست. ببینید یک نکته کشف توش از، این منشه تصرف شده که اینها امارات فرس شما یقین داشتیم به اینکه زید زنده هست. الان استثابه حیات زید می کنیم بگذر کنی. این استثاب حیات زید یعنی شما چیگه ای ببین ببینیم دیروز من زید دیدن این یعنی کردم، همون صورت دیروزی در ذهنتون هست دیروزی, دیروزی نمی شیم تو با هم بودیم این صورت دیروزی اینا معتقه در این صورت دیروزی که دیروز پیدا شد در ذهن شما این صلاحیت داره که در تیه زمان کمرنگ بشه اما همون صور دیروز شما به رو دیدین امروز این همون صورته صورت دیگری نیست. یه کم چند رنگ ممکن تو شبه بشهطور این کردم چ من اون بامثل. و اون پررنگی که دییررو دیدیم نخوایم این می سر رین که شنیدین این سر این ن کاامدن به استرس ها و کردن این نش خیلی در این برای شما عرف کردیم. این عبارت معروف که یقینه به حدوث موجب زنه به بقایه مراد اینه یقینه به حدوث یعنی وقتی شما یک صفت یقینی پیدا کردیم به حدوثی شه خود اون یقین مولد زنه به بقایه خود همون یقین یعنی چی؟ یعنی اون صورتی که یه روز در شما خیلی واضح بود امروز همون صورت عوض نشده ولکه یه کمی کمرنگ شده اون صورت پررنگیه این صورت کمرگست روشون زد یقینه به حدوث این منشه این شده که استثاب رو جز امارات شده که که جز امارات دونستن از مثل استاد هم اینشالا خواهد دارم ایشون هم استثاب رو جز امارات میگونن و معتقل نز امارات که یه فرقی یعنی این نقطه وجدانی رو ایشون احساس کردن فقط فرقش اینه که امارات جمعه حکایت دارن استثاب نداره وقتی تو و فراوا تجادهشون قال که اما است اونجا حال به اماری. هست. اون به خاطر روایتی که وارد شده او بینطر از ده تر و بعد ضوع اصلا اونشون جا اونجا به اماری هست یعنی اون اوقللا متعاه حالا تا که دیشب می یک تففهه کتاب نوشته، شک میکنه فلان، نوشته ت نوشتهدارنگه یعنی چون عمل تمام شده بین عمل متجه بوده میشه درسته؟ درسته از اون عمل، ببینیم اون صورت یقینی عمله اضافه شده بهش توجه نتیجه تن زن نبسته حق این دوستان با هم جمع کنیم اتیان عمل با توجه با قول ریاضیدان ها نتیجه میده زن نبسته حق عمل ایشون این اینجوری تصویه میکنن به لذاق اغلایی هم میدونن قاعده فراغ و قاعده تجاوز و اغلایی هم بینیم معنا که ایجاد زن میکنه به صحت اول طبعا روی این تصور ایشان اگر حواشی و عروه ایشان دیده باشین حالا زلمینه ها شو سره در, در حواشی و هر جسابه و عروه خواسته از سات رو سه جایی بکنه از سات رو قاضی تاراده ایشون قید معلی التفاق داره این سر این که مرمون استاد کلمه معلی التفاق اضافه کردن مال اینه چون ایشون این رو ام و این اماره بغلایی جزئیه که اینش اتفاق حالا اگه دیشب وقتی نخونیمش من گیج می‌ندازم حواسم می نیست باشه حواسم جمع بود نبود میگن دیگه در اینجا شما زنده به صحت عمل پیدا نمی‌کنید درست با اون تفسیر اوغلایی شما زنده به صحت عمل پیدا نمی‌کنید این سر اینه که ادبه از علما تو قاعده حرا یا تجاوز نشا معل انتفا باشه این معل انتفا تأیید قاعده فراغت و تجاوز رو یه قاعده اقلایی میدونن و میگن اوغلا در صورت التفات التزام داره اما علمای دیگه که خود را این حویرم همینه که قید التفات رو شرط اینجاست میگن می درسته قاعده اوغلایی در صورت التفات اما تعبد شرعی اوسع از التفات روایاتی که در تعبد شرعی داریم اوسع از التفات این سر این نکته است که ریشه های اصول خیلی از اصول ممکن رویشه هاش اغلایی باشه و شارع درش تصرفی کرده باشه مثلا فرصول منباب مثال شاید مثلا اغلا شکه در مقتضی و مثلا جای استصحاب ندونن شکه در مقتضی همیچی من خیلی واضح برای شما رو ارز بکنم افتصحاب خودش اگر از تو است. یعنی انسان اگر یقین یعنی داشته یک چیزی با قول این آقایون به بقیه درست شد؟ چرا این یقین موج بزنه به وغا کی این یقین استمرار پیدا میکنه در ذهن سوال میگه این یقین در وقتی استمرار پیدا میکنه که جلو یقینی یک مانعی رو فرض بکنیم اگر جلو یقینی یک مانعی رو فرض کردیم چون نه انجام شدیم مثلا ز دیروز نموده میشه میگن خوش‌شانس نه ادامه استمرارند یکی دیگه پوشش شده میگه پوشش نشده میگه اینکه شکته کاریه کی دیگه شکتنا کردی خودت بکنید شما چه کار میتونی استساها حیات اما اگر در جایی خود یقین از داخل متزرزل شد تطور کنیم نه اینکه یک چیزی از خارج رو جلوشه گره را این اوقات یقین از خود داخل متزرزل میشه احتیاج به عامل خارجی نداره مثلا چراغی روشن بوده چراغ نفسی توش نفتیشتیم پنج ساعت بعد روشن بوده الان شک داریم من شعر شکتون این نیست که کسی آمدیش خاموش کنه من شعر شکتون اینه که من نمیراز شقد نفتو شده نفت به مقداری بوده که تو حالا باشه یا نفت کم بود دو ساعت قدر تمام شد اصلا خود ببینیم این مورد از شک در مختزی چون مرموم آید هم آیده به تفصیل بین مختزی و مانعه و من چیم مرموم و به استادمون همساری و مرموم استاد من آید قائل به تکثیر در بین شک مختزیه اون، در دوره اخیر که خدمت جمهوری برگزار مثل مشهور قائل شدن شک مطلقاً، چه مختزی چه مانع. اگر اونجا ملاحظه کنید خود شک در مختزی و مانع، مثلا گفت مختزی کی؟ این این تصویری که من برای شما خیلی کردم خیلی روشت مفهوم مختزی کرد هر وقت شک یهین شما از داخل متزلزل بشه، نه از آنصر خارجی. این شک در مختزی. حالا اسمی ایلا میخواد بگرم اغلا همچین سیره ای دیگه ندارم تو دقت بخونیم؟ اگر یقین از داخل به شبهی وارد شد مثلا شد این یقین رو دیگه دامن اینده اگر یقین با مانع رو برو شد بخواهد بگیره یقین با تهارت با نو مثلا بله اما اگر یقینش خودش پی نفسه زعیفه مثلا من دیمیده اصلا نفس چقدر کنی بوده احتمال میدونم برنزه یه میتونه حتی دو ساعت الان تمام شده احتمال میدونم اصلا ببینید یقین خودش تزرزل دارید اون یقینه نه؟ اینجا به خاطر مانه نه کسی اون چرا خاموش نکرده بسنشون این بحثی که اغلا در اینجا استثابه جاره نمیدونه این بحث اغلا در اینجا اگر همه چیه خود دارید همین ماها خودموند. میگه اینجا مح... حالا جاری نمیدونه بی این معنا خوب دقت بکنید چون مثلا قسمتون آخو جاری میدونه خاطرون صاحبش جای میدونه عادیو ببین او حالا كده میشید حالا غیر از این تعبده غیر واقع این کلیم چی مراد اینه که لا اقل مشکوکه وقتی جاری نمیدونه میخواد همه اتفاق لا اقل مثلا 50 درصد میگن جاری میشه از مردو 50 درصد میگن نه چرا چون اینجا اون متقن فی نفسه گیر پیدا کرد ما گیرمون این نبود کسی اون چرا خاموش بکنه اگر شک کردیم باز داده کسی اون چرا خاموش کرده ولی بله استثاب بقا اون چرا میکنه اما الان مشکل این نیست مشکل دیده که اصلا ما نمی دونیم این چقدر قابلیت داشت این می اونجا تا اونجا نه تشید اصل قابلیتش برای ما مشکل بود این اصلا شکل در محتضیه روشن جده ما صدابدانیم که خاطر اینسه اورق قلاعه صدابدانیم میگیم بو اورجیه اورق به او نر اورفن هست می دونم از سر می دونم خبرش ایشون چه کلمه من می قبل از حالا غیر از کلمه نقد میشه. من موقتاً اینا غیر از کلمه نر یک ارتکازات و اغلایی هم داشتن یعنی وقتی به ارتكازات و علما من صداب دینایش شما دو خوب خود ما احتساب اوغلایی می‌نین تعبد درش واضح نیست میشه شیخ از باب اینکه این خیلی عقیلی شیخ هم اوغلایی قبول داره اما ایشون نظر رو تعبد و کلمه نقد از نقد خوب دقت بکنید همونجوری که شیخ فرموده نقد در لغت عرب قطع نیست ها اشتباه نشه نقد در حقیقت در لغت عرب اصل شل کردنه متزلزل کردنه این که شیخ همتا میشون فرمودن، این توضیح راست است چون بعضی از آیه ممکن درست منتبه نکه مرادش افتاده راست هم هست. ببینید شما یه دفعه مثلا ریسمان رو خرک میکنید و قرد میگن یه ای دفعه ریسمان که محکمه نخاش از هم جدا میکنه این راحت قرد میشه اینه نقض میگه، این نقض خلحب کلیسی نقض از قبلها که در قرآن آمده. خود نقد و لزوم شیخ از کلمه نقد این معنی رو در ورده. به راست هست یعنی این معنا اجمالا، لکن ما معترضین غیر از حالا کلمه نقد به معنای خودشه یا ولی زبانی در اینجا به خاطر قر مثلا اهل سنت از همین قاله استصاح تعبیرشون علی یقین لا یزال بشد. یعنی علی یقین لا یزال بشد. به جای لا یُنقد لا و در بحث استصحاب مفصل و مطالع شده اینها وارد شدن مثلا در روایت اربعنه حدیث معروف استن اليقینه لا یوس یک جا نغزه یک جا دف، یک جا زوال چون اینه خصوصیات خاص داره که خود مورد تعریف خاصه تو بحث استصحاب من حالا فعلا وارد دقت سوال اینه میگن درو شادس داره اینا میگن ما وقتی این حالت رو میبینیم این خودش یک زن نمیاره لذا در اکثر کلمات اهل سنت صادم نگاهی در قبیل به بمنزله امارات گرفته حتی اساتید درا هم اماره گرفته چرا از این اصول محمد و صلی الله اماره گرفته سر اماریت او شد اینا دیگه همین یقین یعنی به حضور زن میاره حالا تعبیر الان در علم شناسی کلمه معنا و مفهوم دارید برای لادگیری به کار میبرن یعنی اون صورتی که از چه در ذهن شما هست اگر روشن مثلا معناست اگر یه باشه هاشی کمی چیره بشه میشه محکوم یا بعد در این در اصطلاح اموشتناسی ما نوشه هم من, من اصطلاح جمجه شاد کرده باشه اما اصل مطلب رو داره اصل مطلب توی اموشتناسی ثابته ما آمدیم شبیه این رو در اصول گفتیم شما یقین که پیدا که صورت واضحیه بر اثر گذشته زمان و اون صورت کمی چیره میشه از میشه این تقریب اکتصالی که مثل از تو استاد این راه نرفتن با قولی شود ما معتقدیم گاهی و قدیق تقییر و ارتکازاتی داره هنر ما اینه که شنگون ارتکازاتی تمسط که به در لغزیش خود نویشتن و مرور شده یه ارتکازاتی هست این ارتکازات مثلا شکل بین مختزی و مانه رو فرق میزنه این را چه راست اینه تمدید رو عماره می دونن اما تمدید حکایت نذاره اینا بر مولا نشه تمام عمارتش هم جنبه حکایت کشه اگر بگیم ستاد نه اماره یعنی جنبه کش داره اما از خارج نه حکایت از خارج می کنه چند مود مثلا در ذهن مثلا شبیه در ذهن چرا ایشون میگن جنبه اماری است هست و اصل مستات چیزیه اصل مستات هم در یعنی مستات است و جنبه چون میگن جنبه حکایت تصدیر داره بایدیم شون دیگه اشتهابی میدیم خدمت واسه حالا حال صحبت می‌بینید این یک است که شما توی اجزانتون احساس می‌کنید. این مطلب رو باید تفسیر بکنیم تفسیر و قانونی در مقابل این حرف اینه که نه علم به یه حدوث زن نمیاره چون ممکنه که دیش ها که چه کرد چون زنی برای حساب میاره بله ولی صورت در ذهن میاد این عمل كلام آیا این صورت مال منش... یعنی صورت ظنی اون یقینه یا این صورت عین همون یقینه لکن اجزاء نفس خوب دقت بکنید این صورتو نفس میسازه یعنی طبق همون صورتی که دیروز بود که ذیل رو دیده بود امروز هم طبقه همون صورت میسازه و به عبارت این اخرام ما چون تنزیل یک امزه داره تنزیل دو جور میشه یه دفعه تنزیل به لحاظ اثر میشه مثلا میگه شما از خبر اجتناب میکردی از این مایه هم اجتناب اینجا تنزیل فقط به لحاظ اثر یه دفعه تنزیل میاد به لحاظ خود اون رؤیت میشه خود اون واقع میشه میگه شما الان داری چی میبینی تصرف زیر رو میبینی ببینید یه قصدید رویت حقیقی شما ادراک حقیقی شما تصرف زیده من از تصرف زید میگم شما ببینید که زید ماله که از این تصرف ملکیت رو ببینید این ملکیت زن نیست این ملکیت ابداعه این ملکیت اشاره، ابداع, ابداع مغننه این میاد این حکم رو میکنه شما ادراکی ملکیت نکردی و اگر خوب دقت بکنید در اصول فرض اولی یک واقع فرض دومی شک در واقعه این شک در واقعه داره که دیروز هم توضیح رو عرض فرض سوم جهل چیزیه این سه مرحله داره پس یک واقعی هست جهل به واقع یعنی این نکته توش هست که در اصول عذاب اصول به واقع لحاظ شده که شما به واقع نرسیدید اون وقت امامیه جعلی کرد این جعل جوره یه دفعه میگه اجتناب کن یه دفعه میگه این خمره این دو تا با هم矛盾 اون وقت اینجا همون که مرمونه این فرمود این که میگه خمره غیر از الف فقاه و خمرونه اسم روح حکومت واقعی است نه حکومت ظاهری اگر جعل توش باشه اسم روح کنه پس شما در اصول این تحلیلی که ما از کردیم اصول شما یک جرد داریم دائما نیست مثل امارات باشه که کاشف از واقعه مثل خبر واحد باشه شما در اصول یک جردی داری جردش این ترتیبه واقع رو لحاظ کرده فرض کرده شک در واقع و عدم اصول به واقع در فردعنم و اصول به واقع این رو قرار داده وقت این رو که قرار میده دو جوره یه جور فقط جرگ عملی اینه اصول باشیم اصول یه جور نه میکنه خود شما رو با واقع باز رو کنه دیگه هم رو با واقع رو برو کنه اینجا این صحبت اینه این وا... با واقع شما رو کردن چون جره خواهی نکاری این واقعی نیست زن نیست اینجا یقیناوره لیکن یقینی که به ظاهر نه اینکه یقینه به واقع در حقیقت یک نوع تصرف در رویت شما کرده مثلا در استثاب به نانهلا هازا حقیقت استثاب یک نوع توسعه یقینه در مرحله بقا توسعه یقین در مرحله بقا یعنی آمده تصرف دیگه شده توی یک لاتنگوز یقینه به شد حالا اگر این رو باید ناظر به همین استثاب باشه چون ظاهر روایت به استثابی می به باب دیگه ایست در محل خودش عرضن اگر این روایت ناظره به این باشه چون اگه میخواد ناظره باشه باید این تعبیر بکنه ال یقین از لمیونتقرد ال و باقه این با باید تصرف بکنه اما لاسنگوز و نحوه خطاب مگر بگیم از قبیل یه دون کسی رماده یک نوع استعاهه کار بوده, بوده شده و نوع مشکل تعبیری داره با مشکل عبور میشیم با تذیه شید که قاعده استثنا پس بنابر ما در باب قاعده یقین یعنی توسعهی یعنی یقین است محلی بقا این توسعه تنظیریه این توسعه در باب قاعده تمام قواعده تمام اصول تنظیری رو لحاظ بکنید همین کاره هیچ فرقی نمی‌کنه این توصیهی ای که در می میشه می شه میگه شما دست مسلمان بوش خریدی از قصاب مسلمان برید قصاب مسلمان از اون تشت می‌کنی کنی تذکیه شده مذکا شده خب اینجا تلازم می نداره قصاب مسلمان باشی گوشت می توی یا واقعا می توی باشی خودشم خبر نداشه. این چه کار میکنه؟ میگه کنه؟ خب باید روی مثلا از گوشت بخورید اینجا هم نمی دانید خوب دار پردش جهله. این فارغ با اماراتی که دیروز عرض کردید نمیدانی مذکا هست یا نمیدانی الان چه نمیدانی چون از دست مسلمان و سوق مسلمان گرفتی این مذکا. این میاد نگاه میکنه لحاظ میکنه گوشی که از دست مسلمان و سوق مسلمان اون رو مذکا اینجوری نگاه میکنه میگه این مذکاست نمیگه این رو بخور. خود اگر گفت این رو بخور خود اصل غیر تنزیلی اگر گفت مزرکات میشه اصل تنزیلی پس الان فرق بین اصل تنزیلی و غیر تنزیلی به نظر من خیلی واضح شد در جایی که فقط حکم باشه انجام بده انج... به قول مرحومه جری عملی باشه این میشه اصل ت... غیر تنزیلی در جایی که احراز واقع باشه به تحبیر آیا این میشه اصل تنزیلی. حالا بچین تعابیر دیگری هم بکنید در جایی که تنزیل و جلز فقط به مقدار و حکم باشه غیر تنزیل اگر جل در رؤیت باشه تنزیل در خود رؤیت باشه اگر در او باشه میشه اصل تنزیل جوره دیگر میتونید معنا بکنید وقتی به شما میگه اشتره به علل خند دقت بکنید شما یک اشتره دارید یک خند دارید اگر آمد گفت این مایهی ای که سابق بوده حالا شکل داری خمرون این مایهی که خمر بوده حالا شکل داری استصاب حالا خمرون اگر گفت هادا خمرون پس اشترمنان خمر اونجا موضوع پیدا میکنه اشترمنان خمر یعنی خایینخایی اول موضوع رو احراض میکنه خایینخای حکم بار میشه حالا بسیه حکم موضوع عرض و باشه موضوع باشه راست باشه محلول باشه چیزی دیگری باشه سمخ دیگری باشه در وعایت بارا اون بحث دیگری اول موضوعه بعد حکم برش بار اما گاری اوقات اینطور نیست اول حکم بعد موضوعه این نقطه فرمی اینه مثلا شما دیدین یک قطره خون افساد تا قطره خون رو دیدین اشترابعا نجت میاد چون در تنگیز علم اجمالی هم اینه شما تا قصره خون دیگی این قطره خون موضوع است برای اشتنب الان نجست اون دقیق کردیم؟ که این انا افتاده تو اون انا پس اجتنب الان نجست آمد اونجا اول خمر آمد بعد اشتنب لاسه رو آمد اینجا اول اجتنب آمد اشتنب الان نجست چرا؟ چون شما خب نجسه دیدیم؟ خون رو دیدی که افتاد تا خون رو دیدیم اجتماعی دیدیم تا حالا بنا؟ اول خود خون اما اینجا این کاسه است اون کاسه اینجا جیفه دکن چون ما ارز کردیم تمجد هر رو متبطف است برای انتقاش سورت از کبرا و سقرا در زی شما در این انامی داریم شما در ذهن نیست که خون تو این این افتاده این تو ذهن تو نیست خون تو این این افتاده نه یا من باید خواهده جز نمیاد لیکن از اون ترم اشترم النجات آمد خون افتاد ولیزا این سر اینه که مثل من آج آزی آخندساللان هسته که اینشالله عرض کنم برد ایشون در واقع علم ایجمالی از همه شدیتر علم ایجمالی با تحصیل یکی میدونه اجمال این مزمل تفسیریه که می‌نوکشی اینه میگه من خون رو دیدم این که دیگر هر موقع این در مزمل تفسیر نکن و نوکشی نده میکنی میخواد توی یک انار به اناری و دو سویی وفته آذیا هدفش اینه دقت کن تسمان خون رو دیدم به لحاظ این که من خون رو دیدم تکیه استنبه نجات آمر بخاطر کی؟ یک دو این تکریف علم در اشتریریه اگه گفت اشتر و اندرجت معلوم؟ بله علم اجمالی مندز ندود علم اگه موضوعی بود این علم تریریه دو سه نسبت این تکریف با ارد و سرس علاقه اگر یک طرف نورد درسل شد یک طرف درسل به قول میشه نسبت تنجا به پنجاه روشن شد اشتر و اندرجت آمد شما به لحاظ اجتنبه عن النجس میگه هم از این اناء اشتباه بگم همان از این به لحاظ اجتر و النجس میگه شما اجتر و النجس رو دیدین گفتین از این اشتباه بکنن از اون اشتباه بکنن درست عمل نکردین لكن شما با اجتنبه اشت... این اناء رو گفتین اشتباه بکن با اجتنبه درست کردی اگر با اجتنبه درست کردی یک این نجس نیست چیزی با این ملاقات رو نجس نمیشه. اینوسی اساسی فرقه اگر در مثال دلیل دیگری بود که مثلا محصول نجس در نماز با شما نلش با مثال میخوام بگم این یا مثلا نزد کرده باشه که اگری مثلا کاسه نجسی رو به یزابدیش مثلا کار رو اگر این کارش این نزد متراکم نمیشه چون این انا اشتر بهن النجس اما این ادا نگفتید نجسته نکودی ملاقیه در پس پس بر این به نظر من اصل محرد و غیر محرد کاملا دیگه تفصیلش واضح رو. چون اصول همیز رو که از, از قبیل معانی حرفیه هست و امارات از قبیل معانی اسمیه نهی که همون رو بود لذا در اصول همیشه لحاظ شرطه خوب دقیقه دونه این سر اساسی فرق از امارات و اصول در امارات لحاظ شرط نیست این نقطه خرقه هر و اون مسئله تا آرز و اصول هم با این نقطه که ما خیلی راحت حل میشه آقای خیلی کار رو پیچیده کرده ما با این تبدیلی که هست خیلی راحت و مشکل را حل کردیم حالا این در قدره تا اون مشکل من اشاره بکنم. در اصول و کلن لحاظ هست بدون لحاظ نمیشه مثلا میگه شما میبینید این آقا تطرف به, ت... به لحاظ تصرف میگه حکومه که یه نگاه میکنه تصرف رو مثلا شما اگر شک کردین حالت سابله داشتی میگه استثاب در بعد جا میگه قاعده فرا این شوقهی معروفی دیگه شیخ مطرح گرده چرا در درامن بین استثاب و قاعده فرا قاعده فرا مقدر میشه ببین من در سجد شک کردم رو کو ارجان داده میگم تصور بکنید خب این انسانی که در حال سجی شک میکنه خب این یقین داشته قراعت انجام داده این که یقین داشته کی یقین داشته وازه سوره هم شده یقین داشته در حال قراعتم راکه نبود رکوع نبوده پس یقین به عدم رکوع داشته در حال قراعت قصران رکوع این همونده قومت ستصال و عدم رکوع از اون رو قاعده فراغ میگه بلا قدر کرد سؤال اینه استثاب میگه رکوع نکردی؟ قاضی خارج میگه رو کو نکردی اسصحاب میگه رو کو که از فقط است که موارد تصرفوها بحث کلا اصولی یک پول ارزش داری که تخصیص به پول حکومت یا پولت ورود به پول ما شاء حضرات اعلی ما در اونجا یک نکته رو عرض کردم گفتم ببینید وقتی که امام میگه بالاخره کرد یعنی معنی شیه؟ معنی این معنیش چیه من به واسطه این من تحلیل اصولی برش عرض کردم این که امام تا آمد رو بلاقه رکر یعنی من قبل از رکوع رو که قیام باشه لحاظ نکردن ببینید اگر بخواد نقطه فلی روشن شد اگر بخواد استصحاب جاری بشه باید حالت سابقه رو لحاظ بکنه لحاظ حالت سابقه قبل از رکوع قیامه قراعت اگر مخواد استثابه عدم روکوع بکنه باید نظر رو قیام میگه میگه قیام نکرده بودی پس روکوع نکرده میگه میگه ستا قیام نکرده لعن نکه کنی یقین من وضوعه میگه تو یقین به وضوع نداشتی پس این خیلی ضریفه این نقطه بین اصول چون قوام و اصول به لحاظه وقتی که آمد گفت بلا قدرک که یعنی من قبل از رکوع رو لحاظ نکردم همین که لحاظ نکرد خب شناس استصحاب جور نمی‌شه دیدیم خود نقی تقدیم مقصدی می‌خواد خوب تکاپو کرد این یک نکته دقیقی بود در کلام شیخ و بعد این مسئله رو اعلام فرم و تعرض این ظرافتی رو, رو که عرض کردن و این نکته ظریف رو حتی باعث تخصیص گرسن که خیلی عجیبه ما عرض کرد نکته اساسی اینه و روی اینکه نماز رو بکنه قیام بوده یکی رکوع بوده تا رکوع رو لحاظ کرد من قیام لحاظ نکردم تا لحاظ نکرد احساسی این اون وقت اون وقت اون وقت تعارض نداشت احساس با غیرا با اون زرافت کار روشن شد پس اصول بدون لحاظ نمیشه کلا تا آمد حالت رکوع بلاغذر کرد یه چی یعنی که من حالت قیام نگاه نکردم تا حالت قیام نگاه نکرد جوی استثابیست خود به خود جوی استثابیست چون قیمان اصول به لحاظه تا لحاظه نشد اصولیست من که به ما ها احسن تو. در قیل تنزیری لحاظ هست آبون در مثلا محلوم شیخ نمیشه اشتر که ما دونه زنن همون حالا اونجا توضیح داده. و این ما لا اگر لا شکی در تقریب متلقه اون به ظاهر عبازیشو در غصور قیل لحاظ نگرفتن ما از که اونجا هم لحاظ لیکن لحاظ در اونجا خوب دقت کنید به لحاظ حکمه در اصول تنظیری لحاظ به لحاظ موضوع فرقش نی یعنی در اصول غیر تنظیری اجتناب عن النجهت نگاه کرد طبق اجتناب عن النجهت رو علید به تناق بکم این که گفت دو تا اجتناب بکم دید یک قطره خون برما بزنید دید یک قطره خون افساد تا دید یک قطره خون افتاد حکم آمد خون و خون دیگه حکم امارت به لحاظ اشتناب خب از این هم اشتناب بکنه شد مطلب پس که شیخ تصور فهموندن و الان بعدش شیخ که در اصول دره تنزیلی که شما سوال فهموندید لحاظ نیست هست اصول به لحاظ نمیشه چرا؟ چون اصول باید فرق واقع بکنه شب که در واقع بکنه جمع بکنه نمیشه به دنون وقت نمیشه پس یه میخواد لحاظ بکنه خود و میگه اشتنبه اندنگیس آمد ببینید؟ اشتنبه اندنگیس آمد به لحاظ اشتنبه اندنگیس از این دوتا اشتناب بکنه. یه دفعه میگه آقا این سابقا خمر بزاره شکل میکنه یه هنوز هم خمره پس به لحاظ سابق خمره اگر گفت خمره بحث سریعه جمعی آثار خمر بار میشه اما اگر گفت اشتنب همه آثار بار, نمیشه. فقط بار میشه. و ما قاعدش هم عرض کردیم چون تنزیل تنزیل از امور ایشایی در امور ایشایی در مقدار ابراز ابرازش اشتنه به ابرازش اینی خیلی نجیس رو ابرازش مقدار اشتنه به هنگر در مقدار اشتنه شد بقیه آسال بسید بخوره جلد جلدش رو کنم یک از این دو انا که مشتبال خمییت یا مثلا ملاقی رو نجیس بشه بقیه آسال باز نمیشه بشه که تمایل کلامی اینجا داره که که رو فردا ازم کنم وارد حالت موزوی میشیم و سلام الله حالا